ماهیگیر بینوایی در کلبهای در ساحل رودخونه زندگی میکرد کلبهی اون دور از تابش نور خورشید و سر وصدای شهر زیر درختان و بوتهها ساخته شده بود و آواز پرندگان در بین اونها شنیده میشد یک روز ماهیگیر طبق معمول برای انداختن تورهاش توی رودخونه بیرون رفته بود گهواره بلورینی رو دید که جریان آب اون رو به سمتش مییاره اون فوراً دور شو به زیرش برد و گهواره رو بالا کشید و روکش ابریشمی اون رو کنار زد. داخل گهواره دو نوزاد، یکی دختر و یکی پسر روی تشک نرم ای خوابیده بودند. اونها چشماشون رو باز کردند و بهش لبخند زدند. مرد با دیدن این صحنه اندوگین شد، تورش رو انداخت و گهواره و نوزادان رو به خونه پیش همسرش برد. زن فریاد زد: داشتن هشت بچه کافی نیست که دوتای دیگه هم آوردی فکر کردی که چطور باید شکمشون رو سیر کنیم ماگیر جواب داد نکنه انتظار داشتی اونها رو به حال خودشون رها کنم تا از گرسنگی بمیرن یا اینکه بین امواج دریا غرق بشن چیزی که برای هشت بچه کافی باشه برای ده بچه هم کفایت میکنه زن دیگه چیزی نگفت در واقع دلش برای اون موجودات کوچیک ضعف میرفت. در حال همیشه توی اون غذا وجود داشت بچه ها بزرگ شدن و به قدری خوب و مهربون بودند که پدر و مادر خونده اونها رو حتی از بچه های پر سر و صدا و حسود خودشون هم بیشتر دوست داشتن. توری نکشید که اون دو فهمیدن پسرها دوستشون ندارن و همیشه بهشون کلک میزنن. به همین خاطر عادت داشتن که از اونها کنارگیری کنن و تمام مدت رو در ساحل رودخانه میگذروندن. اونها کنار رودخونه تکیه های نونی رو که از سبحانشون نگه داشته بودن بیرون می و اون رو برای پرندگان ریز ریز می کردن. پرندگان هم در مقابل چیزهای زیادی بهشون یاد داده بودند، مثل سرخیزی، آوازخانی و حرف زدن به زبان خودشون که کسی از اون اطلاع نداشت. اما با وجود اینکه اونها نهایت سعی خودشون رو میکردند تا از دعوا با برادرخونده هاشون کنند، حفظ آرامش همیشه سخت بود. عوضا بدتر و بدتر شد تا اینکه یک روز صبح بزرگترین پسر خانواده به دو گفت hm. خیلی خوب میتونید تظاهر به خوش رفتاری کنید و خودتون رو بهتر از ما نشون بدید. اما ما حداقل پدر و مادر داریم در حالی که شما مثل وزقه و قرباقه ها فقط رودخونه رو دارید. بچه بیچاره جوابی به این توهین ندادن. اما غمگین شدن و با هم زمزمه کردند که دیگه نمیتونن اونجا بمونن و باید به دنبال بخت و اقبالشون برن. به همین خاطر روز بعد مثل پرندگان صبح خیلی زود بدون اینکه کسی از سر بیدار بشه، اومدن پایین و از پنجره که باز بود، رفتن بیرون و به کنار رودخونه دویدن. بعد انگار که دوستی رو پیدا کرده باشن، در کنار ساحل رودخونه راه رفتن و امیدوار بودن که بالاخره کسی اونها رو ببینه و ازشون مراقبت کنه اما تمام اون روز رو راه رفتن بدون اینکه موجود زنده رو ببینن تا اینکه موقع شب خسته با پاهای زخمی کلبه کوچیکی رو جلوی خودشون دیدن خیلی خوشحال شدن اما در کلبه بسته بود و ظاهرا خالی به نظر می رسید. خیلی ناامید شدن با این حال پسر جلوی اشکاش رو گرفت و با شادمانی گفت خب در هر صورت نمکتی اینجا هست که میتونیم روش بشینیم وقتی که استراحت کردیم نقشه این میکشیم. بعد نشستن و تا چند لحظه به قدری خسته بودند که متوجه چیزی نشدن. اما کم کم متوجه شدند تعدادی پرستو زیر آجر سخت گبه نشستن و با شادی چهچهی ای میزنند. البته پرستوها نمیدونستند که بچه ها زبان اونا رو میفهمند و گنه آزادانه حرف نمی زند. اما اونها هرچی رو که به ذهنشون می رسید میگفتند. پرستویی که رفتارش در مقایسه با پرستوی دیگه رفتار خشنتری داشت گفت شب بخیر خانم شهری زیبا، واقعا که چشم ما روشن. بالاخره بعد از سالها زندگی تو قصر پیش دوستان روستایی خودت که مدت ها بود فراموششون کرده بودی برگشتی. پرستوی دیگه جواب داد من این رونه رو از والدینم به ارث بردم چون اونها این رو برام به جا گذاشتن حتما در اون سکونت میکنم اما بعد امیدوارم شما و خانوادهتون خوب باشید. پرستوی روستایی گفت خوشبختانه باید بگم که خوبی اما دختری بیچارم مدتی پیش چنان چشم دردی گرفته بود که اگه عط جایدووری که فورا اون رو شفات پیدا نمیکردم حتما کور می شدد. برست شهری گفت ببینم بلبل چطور آواز می آیا چکاوک به همون ارتفاع سابق پرواز میکنه و صره به سابق هست روستایی گفت من هرگز شایعع نمیسازم مردم ما که زمانی بسیار معصوم و خوشرفتار بودند از آدم‌های بد سرمشق گرفتن واقعا جایی توسفه پرستوی شهری گفت چی میگی معصومیت خوشرفتاری در بین پرندگان اون هم در روستا دیده نمیشه دوست عزیزم این چه حرفیه پرستو روستایی گفت حقیقت رو میگم فکرشو بکن وقتی به اینجا برگشتیم با تعدادی سوره برخورد کردیم که با اومدن بهار و شکوفه و روزهای بلند، آزم شمال و سرزمین‌های سرد بودند. با دلسوزی زیاد سعی کردیم اونها رو تشویق کنیم تا دست از این حماقت بردارن. اما اونها با نهایت گستاخی جوابمون رو دادند. پرستوی شهری گفت: چقد وحشتناک. پرستوی روستایی گفت: بله همینطوره. بدتر از همه که چکاوک تیسپر که قبلا محبوب و خجالتی بود الان دزد شده و هر وقت که ذرت ببینه اون رو به سرقت میبره. فرسوی شهری گفت از چیزی که میگی تعجب میکنم. کنم روستایی گفت اگه بهت بگم که با اومدنم به اینجا توی تابستون متوجه شدم که گنجشک لانم رو با بی‌شرمی اشغال کرده بیشتر تعجب می‌کنی بهش گفتم این لونه منه اون با خنده گستاخانه جواب داد هم. لونه تو من گفتم بله لونه من اجداد من اینجا به دنیا اومدن و پسران من هم اینجا متولد خواهند شد ما گفتن این حرف شوهرم اونو از رونه بیرون کرد. مطمئنم چون این اتفاقی هرگز توی شهر نمیفته. پرستوی شهری گفت شاید دقیقا به این صورت نباشه اما من خیلی چیزا دیدم. اگه فقط میدونستی؟ اونا همگی فریاد زدن. برامون بگو. برامون بگو. وقتی که اونا راحتی لم دادن پرستوی شهری شروع به تعریف داستانش کرد. میدونید که پادشاه ما آشق کوچکترین دختر یک خیاط شد که به همون اندازه که زیبایی داشت مهربان و خوش اخلاق هم بود نجیب زادهای اطراف پادشاه امیدوار بودند که اون ملکه ای از بین دختران اونها انتخاب کنه و سعی کردن مانع ازدواجش بشن اما پادشاه گوش به حرفشون نکرد و این عروسی انجام شد چند ماهی نگذشته بود که یه جنگ اتفاق افتاد و پادشاه با سپاهش عازم جنگ شد و ملکه رو که از این جدایی خیلی ناراحت بود ترک کرد بعد از برقراری صلح سول و برگشت پادشاه، اطرافیان بهش گفتن که در قیابش همسرش صاحب دو فرزند شده، اما هر دوی اونها مردند و اینکه زن عقلش رو از دست ساده و اون رو در برجی توی کوهستان محبوس کردن تا هوای تازه باعث مالجش بشه. فرستو ها مشتاقانه پرسیدن و این حقیقت نداشت. پرستوی توی شهری با تحقیر نسبت به حماقت اونها جواب داد: البته که نه. در همون موقع بچه‌ها زنده و در کلبه باقبان بودند اما موقع شب پیشگار پادشاه اومد و بچه‌ها رو توی گهواره بلورین گذاشت و به رودخونه انداخت یک روز کامل بچه‌ها سیو و سالم روی آب شناور بودند چون با وجود عمق زیاد آب آروم بود و آسیبی به بچه‌ها نرسید به گفتگی دوستم مرق مرغ ماهی‌خوار صبح روز بعد ماهیگیری که نزدیک ساحل رودخونه زندگی میکرد آنها رو نجات داد بچه‌ها روی نیمکت لم داده بودن و با تنبلی به حرفهای پرنده ها گوش میکردن. اما وقتی که داستان گهواری بلورین رو که همیشه مادر با آب و تاب براشون تعریف میکرد شنیدن، صاف نشستند و به همدیگه نگاه کردند. چشماشون به هم میگفت چقدر خوشحالم که زبان پرندگان را آموختیم. در همین موقع صدای بقیه پرستوها بلند شد. اونا فریاد زدند: واقعا چه خوش شانسی! پارسو ادامه داد وقتی بچه ها بزرگ بشن میتونن پیش پدرشون برگردن و مادرشون رو آزاد کنن. پارسو شهری در حالی که سرشون رو می میداد جواب داد اونطوری هم که فکر میکنید کار آسونی نیست چون اونها باید ثابت کنن که اولا بچهای پادشاه هستن و بعد اینکه مادرشون هرگز دیوانه نشاده بود. در واقع به قدری دشواره که فقط یک راه برگی ثابت کردن اون به پادشاه وجود داره. پارسوها دست جمعی فریاد زدن چرا تو از کجا میدونی؟ هر از توی شهری جواب داد، من میدونم. چون یک روز که از باغ قصر میگذشتم با یک فاخته برخورد کردم که همونطور که میدونید این پرنده همیشه وانمود میکنه که میتونه پیشگویی کنه. ما مشغول صحبت در مورد اونچه که در قصر میگذشت و اتفاقات سالهای گذشته شدیم. اون گفت تنها کسی که میتونه بر جنسی وزیران رو آشکار و اشتباه پادشاه رو بهش نشون بده، مرغ حقیقته که میتونه به زبان آدم ها سخن بگه. من پرسیدم کجا میشه این پرنده رو پیدا کرد؟ فاخته جواب داد اون در قلعه که دیف بیرحمی از اون مراقبت میکنه زندانیه. این دیف در 24 ساعت فقط یک روب میخوابه. پرستوی روستایی که مثل بقیه پرستوها و از همه مهمتر بچه ها با توجه بسیار به داستان گوش کرده بود پرسید این قلعه کجاست؟ دوستش جواب داد این رو فقط میتونم بگم که در نزدیکی اینجا برجی هست که جادوگر پیری در اون سکونت داره که راه رو میدونه و فقط اون رو به کسی میگه که قول بده از چشمه رنگارنگ براش آب بیاره تا برای سهر و جادو مورد استفاده قرار بده. اما هرگز مخفیگاه مرغ حقیقت رو آشکار نمیکنه چون از این پرنده نفرت داره و اگر میتونست اون رو میکشت. هر حال از اونجا که به خوبی میدونه این پرنده هیچوقت نمیمیره اون رو به سختی اسیر کرده و مرغان بدجنس رو نگهبانش کرده. اونها به این پرنده دهان بندی زدن که صداش رو کسی نشنوه پرستوی روستایی گفت آیا کسی دیگه ای وجود نداره که بتونه به پسر بیچاره مخفیگای این پرنده رو نشون بده؟ اگه اون نتونه به برج برسه چی میشه؟ پرستوی شهری گفت هیچ کس. مگر جغدی که در صحرا گوشه نشینی کرده و تنها ای که از زبان آدمیان بلده سلیبه. به طوری که حتی اگه شاهزاده به اونجا برسه هیچ وقت نمیتونه اون چرا که جغد میگه بفهمه. اما خب میبینید که خوشی در حال غروب کردن در اماق دریاست. من هم باید بلونه خودم برم. شب بخیر دوستان. شب بخیر. پرستو؟ شروع به پرواز کرد و بچه‌ها که از شوق این اخبار عجیب خستگی و گرسنگی رو از یاد برده بودند بلند شدند و مسیر پرواز پرستور رو دنبال کردند بعد از دو ساعت راه رفتن به شهر بزرگی رسیدند که اطمینان داشتن باید پایتخت قلمرو پدرشون باشه با دیدن زن زاهیرا مهربونی که در درگاه خونه ایستاده بود ازش پرسیدند آیا اون شب جایی برای خوابیدن به اونها میده یا خیر زن که از صورتهای زیبای اونها و رفتار معدبانشون خوشش اومده بود به گرمی از اونها استقبال کرد. روز بعد صبح خیلی زود دخترک شروع به جارو کردن اتاقا کرد و پسرک مشغول آبیاری باغ شد. طوری که وقتی زن مهربون پایین اومد کاری باقی نمونده بود که انجام بده. این موضوع به قدری اونو خوشحال کرد که از بچه ها خواهش کرد همونجا زندگی کنند. پسر جواب داد که حاضر خواهرش اونجا پیش زن بذاره اما خودش کار مهمی داره و باید بدون اتلاف وقت اون رو انجام بده به همین دلیل باهاشون خداحافظی کرد و بره افتاد اون سه روز بیراههارو ها رو پیمود اما اثری از برج ندید روز چهارم هم به همین شکل با نامیدی میرفت که از شدت خستگی و نامیدی خودش رو در زیر درختی به زمین انداخت و با دست‌هاش صورتش رو بعد از مدتی صدای خشخشی رو بالای سرش شنید. وقتی که نگاه کرد یک قمری رو دید که با چشمای براقش بهش نگاه میکنه. پسرک به زمان پرندگان خطاب بهش گفت: قمری، قمری جان، خواهش میکنم به من بگو قلعه اسارت کجاست؟ قمری جواب داد: تپل بیچاره، کی تو رو به این جستجوی بی‌حاصل فرستاده؟ پسرک در جواب گفت: خوش یا بد من، نمیدونم، یکی از این دو. قمری گفت: برای رسیدن به اونجا باید دنبال مسیر باد که امروز اتفاقا به سمت قلعه میوزه پسرک از عمری تشکر کرد و مسیر باد رو دنبال کرد و دائما وحشت داشت که باد تغییر مسیر بده و اون رو منحرف کنه. اما ظاهرا باد دلش برای اون سوخت و دائما در همون جهت میوزید هرگاهی که جلوتر میرفت اون منطقه غمنگی سر به نظر می‌رسید. اما شب می‌تونست چیزی تیره‌تر از تاریکی شب و سنگهای لخت ببینه و اون برجی بود که جادوگر در اون سکونت داشت. پسرک کلون رو در, در دست گرفت و سه ضربه به اون زد و صداش در شکاف کوههای اطراف پیچید در به آرامی باز شد در آستانه اون پیرزنی که شمعی رو کنار چهرش گرفته بود مشخص شد اون به قدری زش بود که پسرک ناخواسته عقب رفت و در این حال ها، سوسکا و موجوداتی از این نوک پیرزن رو احاطه کرده بودند به همین میزان پسرک رو وحش زده کردند پیرزن فریاد زد فی هستی و چطور جرعت کردی در خونه من رو بزنی و از خواب بیدارم کنی زود باش به من بگو که چی میخوای وگرنه بد خواهی دید کودک جواب داد خانم، مطمئن هستم که فقط شما راه قلعه اسارت رو میدونید از شما خواهش میکنم اون رو به من نشون بدید جادوگر با لبخند زشی جواب داد بسیار خوب اما امروز دیره پردا باید بری حالا وارد شو و کنار مارمولک های من بخواب پسرک گفت نمیتونم بمونم باید فوراً برم تا به جاده‌ای که دیروز پیش از سپیده‌دم پیمودم برسم. پیرزن جواب داد: اگه به تو بگم قول میدی که یک ظرف پر از آب رنگارنگ از چشمه که در حیات قلعه هست برام بیاری؟ اگه نتونی به قولت عمل کنی تو رو برای همیشه تبدیل به مارمولک می‌کنم. پسرک جواب داد: قول میدم. بعد پیرزن سگ بسیار لاغری رو صدا زد و بهش گفت: این بچه رو به قلعه اسارت ببر و دوست من رو از ورودش باخبر کن. سگ بلند شد تکونی به خود ایجاد و راهی شد بعد از دو ساعت راه رفتن به قلعهای بزرگ سیاه و دلگیر رسیدن که درهاش کاملا باز بود ولی هیچ صدا یا نوری که نشانه حضور کسی باشه شنیده و دیده نمیشد. به هر حال بنظر که سگ میدونه چه اتفاقی خواهد افتاد چون بعد از کشیدن زوزهای بلند دوباره به راه افتاد اما پسرک نمیدونست این همون یک ربع ساعته که دیو خوابیده یا نه مردد و سردرگم مونده بود و چند لحظه زیر درخت زیتونی در همون نزدیکی ها کرد. و فریاد زد خدایا کمکم کن. صدای جواب داد صلیب صلیب پسرک از شادی به هوا پرید چون فهمید این همون جغدیه که پرستو در موردش صحبت کرده. اون به آرامی به زبان پرندگان گفت ای جغد دانا. از تو خواهش میکنم منو حمایت و راهنمایی کن چون من به جستجوی مرغ حقیقت اومدم اما اول باید این ظرف رو از آب رنگارنگ چشمه که در حیات قلعه هست پر کنم. دوق جواب داد این کارو نکن بلکه اون رو از نهری که در کنار چشمه آب رنگارنگ می جوشه پر کن بعد از اون به کبوتری خانه که در مقابل در بزرگ قرار داره برو اما مراقب باش به هیچ کدوم از پرندگانی که پر و بال درخشانی دارند دست نزنی. اونا همگی فریاد می‌زنن که مرغ حقیقت هستن اما تو فقط پرندگی کوچک سفید رو که در گوشه پنهان شده انتخاب کن. اونها نمی‌دونن که اون فانی نیست و دائما سعی می‌کنن اون رو از بین ببرند. زود باش چون همین الان دیو به خواب رفته و تو فقط یک رب ساعت فرصت داری که کاری بکنی. پسر به, به سرعت دوید و وارد حیات شد. در اونجا دو تا چشمه رو در کنار همدید. اون از کنار آب رنگارنگ گذشت بدون اینکه نگاهی بهش بندازه و ظرف آب رو از چشمهای که روشن و زلال بود پر کرد بعد به سمت کبوتر خانه رفت و از هم همهمه‌ای که به محض بستن در بلند شد تقریبا کر شد سر و صدای طاووس‌ها، و کلاغا که کدوم ادعا می کردن مرغ حقیقت هستن بلند شد پسرک با ای مسمم از کنار اونها گذشت و به گوشه ای از کبوترخانه رفت و پرندگی سفید کچیک رو جستجو میکرد که اون رو در بین محاصری گروهی از کلاغای بیره پیدا کرد. پسرک اون رو در سینه خودش جا داد و در حالی که جیغداد مرغان بدجنس بدرقی راه شده بود اونجا رو ترک کرد. به محض خروج بدون لحظه درنگ به سمت برج پیرزن جادوگر دوید و ظرف آبی رو که زن بهش داده بود، تحویل داد. تحویل پیرزن در حالی که آب رو روی پسرک میریخ، فریاد زد، تبدیل به توتی شو. اما به جای اینکه پسرک مثل قربانیان قبلی تبدیل به توتی بشه، فقط چند برابر رعناتر و جذابتر شد. چون این آب برای تلسم نیکی به کار میرفت بدی. بعد موجودات خزنده اطراف جادوگر هم خودشون رو به اون آب آغشته کردن و همگی دوباره به شکل آدمیزاد در اومدن. وقتی که جادوگر این صحنه رو دید، چوب دستیش رو برداشت و پروازکنان فرار کرد. چه کسی میتونه شادی دخترک رو از دیدن برادرش اون هم همرا با مرغ حقیقت حدس بزنه؟ اما اگرچه پسرک خیلی کار انجام داده بود، اما کار بسیار دشوارتری باقی مونده بود. اون هم این بود که مرغ حقیقت رو سعی و سالم پیش پادشاه ببره بدون اینکه درباریان بدجنس که با کشف شدن می شدن آسیبی به هون برسونند. به زودی بدون اون که کسی چگونگی اون رو بدونه این خبر همه جا پخش شد که مرغ حقیقت دوروبر قصر پرواز می‌کنه و درباریان کاری کردند که مانع رسیدن اون به پادشاه بشن. اونها سلاحشون رو تیز و به زر آغشته کردند. عقاب‌ها و, و شاهین‌های رو فرستادن تا اون رو شکار کنه و قفس‌های ساختن تا در صورت ناتوانی در کشتن اون پرنده اون رو اسیر کنند. اونها گفتند که پرهای سفید مرغ حقیقت روی پرهای سیاهش رو پوشونده و در واقع با این کارها از هر فرصتی برای جلوگیری از دیدار پادشاه با پرنده یا توجه کردن به حرفای اون استفاده کردند. همونطور که غالبا در این جور موارد پیش میاد، همون بلایی که درباریان ازش میترسیدن بر سرشون اومد. اونها اونقدر از مرغ حقیقت گفتند که عاقبت به گوش پادشاه رسید و تمایل خودش رو به دیدن این پرنده ابراز کرد. هرچقدر چقدر موانع بیشتری بر سر راهش قرار میدادند علاقه اون به این دیدار بیشتر میشد و بالاخره پادشاه اعلام کرد که هر کس مرغ حقیقت رو پیدا کنه باید اون رو فورا نزد اون ببره به محض پخش شدن این دستور پسرک خواهرش رو صدا زد و اونها به سمت قصر رفتن. اون پرنده رو در زیر لباسش مخفی کرده بود اما همونطور که انتظار می رفت درباریان راه رو بستن و به پسرک اجازه ورود ندادند کار بیوده‌ای بود که بگه فقط از دستورات پادشاه پیروی کرده درباریان جواب دادند که پادشاه هنوز از خواب بیدار نشده و بیدار کردنش ممنوعه اونها هنوز سرگرم حرف زدن بودند که یک دفعه پرنده به سمت بالا پرواز کرد و از طریق پنجرهی که باز بود وارد اتاق پادشاه شد و نزدیک سر پادشاه روی بالش فرود اومد. با احترام تعظیم کرد و گفت سرورم من همان مرغ حقیقت هستم که میخواستید ببینید مجبور شدم اینطور پیش شما بیام چون اطرافیان شما اجازه ورود به پسری که من را به اینجا آورده نمیدن پادشاه گفت اونها سزای گستاخی خودشون رو خواهند دید اون بلا فاصله به یکی از ملازمانش دستور داد که پسرک رو فوراً به نزد اون ببره و لحظه بعد شاهزاده دست در دست خواهرش وارد شد پادشاه پرسید کی هستی مرغ حقیقت با تو چه ارتباطی داره پسرک جواب داد اگه پادشاه بخوان مرق حقیقت خودش توضیح خواهد داد. بدین ترتیب پرنده داستان را تعریف کرد و پادشاه برای نخستین بار از نقشه شومی که سالها مخفی مونده بود مطلع شد. اون در حالی که اشک توی چشمش حلقه زده بود، فرزندانش رو در آغوش گرفت و همراه اونها شتابان به برج کوهستانی جایی که ملکه در اون زندانی بود رفت. زن بیچاره به سپیدی مرمر بود چون تقریبا در تاریکی و به دور از آفتاب زندگی کرده بود. اما وقتی که شوهر و فرزندانه شدید رنگ به چهرش برگشت و مثل قبل زیبا شد. اونها دست جمعی به شهر که جشن و سرور در اون فر بود برگشتن. سر درباریان بجنز از سن جدا شد و دارایی اونها ضبط شد. به زوج پیر مهربان انوالی داده شد و تا آخر عمرشون مورد احترام واقع شدند. قصه ما به سر رسید، کلاقه به خونش نرسید.